الاسيه 7 دومه قواعد فقه و سياسه 24 بهمن 1400 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سیدنا و نبینا سيدنا القاسم محمد و اله اهل بيتطه علينا المعصوم سيما بقيه الله في العرضین شوفي باروح بالعالمين له فدا خدمت دوستان گوزش می طلبم فکر بکنم قطع از حاصل شد در بحثی که داریم بین مقدمات واقعی اللی معلولی با مقدمات اعتباری اگر ما تفکیک بکنیم می توانیم بگیم اگر اهداف ما ازسلخ مقدمات اعتباری باشه امکان تظاحم وجود داره هدف گذاری اگر متکی بر مقدم ساختن و مقدم تلقی کردن اعتباری باشه می توان یکی رو بر دیگری مقدم کرد مقدم تلقی کرد و بعد و شاهد خلاصه شکلگیری تضاهم عملی میان اونها در فقدان قدرت و امکان عملی بود اما اگر واقعا یک امری از سنخ مقدم وجودی باشه اگر موردی باشه که معلول, معلول علت دیگر باشد و ما علت رو بخواهیم هدف بالاتر برای در واقع بگیم دستیابی دستیابی به علت رو بخوایم به عنوان به عنوان هدف بالاتر تلقی کنیم اینجا جای این مسئله هست جای ترهش هست که که آیا اصلا امکان تزاهم بین اونها وجود دارد یا خیر؟ به نظر میرسه در پاسخ باید اینطوری بگیم باید در پاسخ گفت که دو نوع وجود داره دو گونه در واقع دو مورد رو باید از هم تفکیک کرد اونا چیه؟ یکی اونجایی که رابطه الیومعلولی انحساری است رابطه اگر الی و معلولی انحصاری باشه دیگه در این مورد معنا نداره تضاهم بله قدرت میتوانیم محدود داشته باشیم در واقع بگیم رفع تضاهم رو به اون مدلی که جناحای یوسفی فرمودن ممکن نیست در این مورد نمیتوان گفت که علت رو باید بر ته در واقع تحصیل علت رو باید بر تحصیل معلول ببخش تحصیل معلول رو معلول رو به عنوان علت غایی به عنوان هدف غایی یا میانی باید بر تحصیل علت در واقع بگیم علت که هدف پایین مقدم کرد جناب استاد یوسفی خواستن چه کار کنن خواستن این رو بفرماین که چون اون هدف قایی مهمتره، پس اون رو مقدم کنیم ولی به نظر میرسه نه نمیتوان خلاصه به خاطر این که به لحاظ این که در واقع هدف غایی در واقع رطب, از حیث رتبه بر اهداف اه اه اه پایین تر چه اهداف میانی چه اهداف مقدماتی تقدم دارند این رو خلاصه مقدم کرد اون رو بر اهداف مزبور خلاصه مقدم کرد ایشان اینطوری فرمودن که آن اون هدف بالاتر اهداف قایم اما ما این کار نمیشه بکنیم چون که اهداف میانی رو نیز نمیتوان بر اهداف مقدماتی به لحاظ این ترتب و این در واقع جایگاه رتبی مقدم کرد چرا؟ چون که در این مورد ما مشکل دیگه ای داریم اینجا علت, علت انحساریه علت در مورد علت انحصاری اگر اصلا ما علت تحقق پیدا نکنه اگر علت رو ما یه فعل که به مسابق علت انجامش ندیم تحقق عدم تحقق علت در واقع مستلزم عدم تحقق معلول و هدف بالاتره خب اینجا هدف پایینتر علت بود راه بود وسیله بود به تعبیر دیگه اگر علت انحصاری باشد در واقع هدف پایینتر به مسابه طریق انحساری خواهد بود به مسابه در واقع وسیله ای انحصاری خواهد بود که ترک اون مستلزم تر عدم امکان دستیابی به هدف بالاتره پس دیگه شما نید بگید که آقا اگر تضامن پیدا کرد ما اون رو مقدم بکنیم یا نکنیم ببینه تحبیر اشان چی بود تعبیر اشان این بود که می فرمودند ای به این مثال اشان زنند هدف نظام اجتماعی اسلام حرکت مردم به سمت سعودت و است. این هدف نظام اجتماعی دنابراین هدف هر ایک از زیر نظام ها اینه که خلاصه ما اونها رفت بکنیم نیاسهای مادی و معنوی رفت بکنه تا در درون هر خورد نظام ما مسئله حل بکنیم درون هر خورد نظام اشتایی ممکن است اهدافش رتبه بندی بشه مثال اهداف نظام اقتصادی سه رتبه داره در رتبه عالی رفاه عمومی در رتبه میانی رشد و شکوفایی اقتصادی عدالت اقتصادی امنیت اختصاص در رتبه سوم اهداف مقدمی و اینها قرار داره فرمودن که تحقق اهداف رتبه دوم مقدمه تحقق برای هدف رتبه دوم است خب حرف درست یعنی با تحقق سه هدف میانی رفاه عمومی افزایش می یابد بنابراین اینجا مهمه اگر تضاهمی بین رفای عمومی و یکی از این سه هدف پیشهایت به یقین رفاه عمومی مقدم است آیا این جمله درستی یا نه ما عرض بود که نه این درست نیستیم باید شفافش کنیم ایشان میگن مقدمه گرچه تضاهم بین رفای عمومی بین عدالت اختصار و امنیت اختصاری غیر متصور است خب اگر شما میگید مقدمه چرا میگی غیر متصوره؟ بس اگه غیر متصورده اصلا نگید تزاهم وجود داره در واقع اگر امکان تحقق تزاهم وجود ندارد نمیتوان و نباید از در واقع رفع تزاهم میان اونها سخن گفت خب تزاهم نیست این در واقع تزاحم به چه معنا؟ به این معنا که یا این، آقا یه هم داره. در واقع پیش‌فرض بحث تزاحم این است که میتوان هر یک از دو طرف رو انتخاب کرد و دیگری رو رها کرد. اما در فرض حاضر در فرض در واقع علیت انحصاری این بحث جا ندارد، این بحث امکان ندارد. این پیشفر در واقع تحقق نیافتنی است. لظام باید چکار کرد در نتیجه اگر اینجا، ما میتوانیم بگیم امکان تحقیق نیست نباید از رفاه تضاهم صحبت کرد خب جناب اصداد فرمودن چی؟ اگر تضاهم بین رفع عمومی و یکی از این حدثه هدف پیشوید به یقین رفع عمومی مقدم است خب آیا اصلا به این میگیم تضاهم یا نمیگیم؟ بزرگوارم. نزدیم به شارل این باتری ما یک بار کم شد اگر انشالله که قد نشه خط ماشو عرض کنیم بنابراین این پشت سرش میگن اگرچه تحقق تضامن بین رفاه عمومی و بین عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی غیر متصور است خب پس چرا میگید اگر تضامن باشه اون مقدمه شما که دارید میگید اصلا غیر متصوره اینجا میفرمان چرا حالا غیر متصوره چون هر یک از این دو به هر نحوی تحقق یابند باعث افزایش رفاه عمومی خواهند شد البته این تعلیل رو هم من نمیتوانم بپذیرم در واقع با اون بیانی که ما گفتیم چرا تحقق تزاهم غیر متصور نکتش رو این رو بردیم به خاطر این که باید تزاهم هر دو قابل انجام به صورت مستقل باشه هر کدام رو میتوان هرکی رو به صورت مستقل انتخاب کرد و دیگری رو رها کرد و حالا یا اگر فعلیه یا ترکیه متناسب به خودش اما در فرض اعلیت انحصاری این پیش وجود نداره اگر علت تحقق پیدا کند معلول هم معلول هم به صورت ناگزیر تحقق خواهد یافت دست ما نیست و در مقابل اگر علت تحقق پیدا نکند معلول نیز به طبع آن تحقق نخواهد یافت بنابراین اصلا چرا به اسمی میذاریم تزاهم پس اگر امکان تحققش وجود نداره از رفع تزاهمش و اینا هم نباید صحبت کرد خب حالا بریم سراغ این جمله رو پس یه بار دیگه من میخوانم ببینید میفرمایند که آقا این مقدمه قبول ولی دیگه توضیح ندادن مقدمه بودن چگونه است باید دقیقا وقتی که صحبت از مقدمه میشه باید مطرح کنیم وقتی امری به عنوان مقدمه برای امر دیگری تلقی میشود باید ماهیت اون مقدم روشن شود در واقع به تعبیر دیگر معلوم بشه که معلوم شود آیا مقدم بودن اون از لحاظ وجود شناختن وجود شناسی و علیت واقعاً علیت واقعی است یا اون یا این که یا علیت اعتباری است علیت و در واقع بگیم مقدمیتش اعتباری است خب هدف بودن هم طبیعتاً گره خورده هدف بودن با مقدم بودن در واقع بگیم سطحبندی سطبندی اهداف با مقدم بودن گره خورده به تعبیر دیگه یکی وسیله است به تعبیر دیگه یکی وسیله برای دستیابی به امر دیگری خواهد بود در این صورت دیگه ما اسمون قبلی رو اسمش مقدمه نباید بذاریم در این صورت وسیله اینجا در واقعی ما پیشفرزی داریم مفهوم هدف نسبیست اگر یکی هدف برای دیگری باشد اون دیگری هدف تلقی نخواهد شد دل که اون مورد وسیله و روش و راه برای وسیله طریق یا راه دستیابی به اون تلقی خواهد شد هر نسبت به امر دیگری مقدم تلقی شود در واقع هدف تلقی شود خب این مقوله دیگه است پس در اینجا وسیله یه امریه که دیگه هدف نیست وسیله نباید با عنوان هدف تلقی شود که تلقی هم نمیشه. اما باید نوعش معلوم بشه که آیا واقعی است یا واقعی نیست؟ باید خلاصه ما مفهومش رو که نسبیه در نظر بگیریم بعد ببینیم نتیجهش چیه خب پس اگر فرض دوم رو ما بگیریم یه نتیجه دیگه میشه در واقع انحصار اینجا یه نکته کلیدی بود که راهنمایی به ما کرد خب حالا اگر رابطه معلولی غیر انحصاری باشه این مسئله دیگه است یعنی میتوانه یک معلولی دو سه علت داشته باشه در واقع این فرض خودش لوازم خودشو داره این فرض مستلزم اینه که چند امر بتوانند در تحقق امر دیگر نقش آفرنی کنند اما ببینیم به چه صورت خود این میتوانه دو سه فرض باشه این مورد دو فرض حداقل داره یه فرضش اینه که در واقع یک بعض از موارد هم سنخ و هم نوع باشند در واقع غیر انحصاری بودن به این صورته در واقع علیت دو دو یا چند مستاق از یک نوع کلی خب این یه فرضه فرض دوم این که علیت دو یا چند مستاق از انواع مختلف انواع منطقی مد نظر ما دو گونه مختلف باشه دو چیز ناهمسنخ باشه مثلا ما میخوایم بزنیم یه چیز رو بشکنیم هم میخوایم با تیر میشه بزنیم بشکنیم با سنگم میشه خب اینجا در واقع این یه معقوله بود اینا از یه عنوان و یه گونه کلیه یه جسمن اما فرض بگیریم ما بخواییم این شیشه رو با انرژی بشکنیم با انرژی دیگه هرچه این سنگم ناقل انرژی هست اما برای دو سنخ متفاوت باشه خب اینجا الان اون سه موردی که ما به عنوان مثلا امن و عدالت و رفاه در نظر گرفتیم ببینیم تاثیرش چیه. ما اینه که اگر غیر انحصاری بود این مقدمه بودن ببینیم قابل تحقق یا نه. خب اگر یکیش با اون علت تزام پیدا کنه اولا واقعا اگر علت بازم این شاید این چند مستاق دو از دو نوع بودن یا یک نوع بودن باز ممکنه تاثیر نداشته باشه واقعا الیت وجودی مباحث مربوط به تضاحم و اون تنافی تضاحم یه مقداری غلط انداز هست یا نیست اگر در تضاحم مثلا میخوایم بگیم که آقا از این دست برداریم اگر در واقع تضاحم بین علت یا در واقع بگیم مجموعه از علل به صورت متناوب به صورت علل بدل علت‌های مختلف به صورت علل بدل با معلول در واقع با هدف بالاتر به عنوان معلول خلاص لحاظ بشه اینجا چه وسا مثلا چه وسا تصویر تضاهم به صورت بدوی قابل ترح باشه یعنی چی؟ یعنی میگه این تضاهم پیدا کرد خب با اون قابل جمع نیست اینجا چون که علت جای هست شما در انحصار نمیبینید میگید آقا این تزاهم اون پیشفرز که ما گفتیم چی بود؟ این که این بود که به صورت مستقل هر کدامه بشه انجام بدیم خب چرا گفتیم بدوی؟ در واقع پیشفرض تزاهم بود که هر کدام رو به صورت مستقل دو طرف یعنی دو طرف تزاهم خب شما در زاهد در, این در بحث در جایی که که علل بیر انحصاری داره ای این مورد این می توانه در واقع تحقق پیدا کنه خب اون مانه رفت میشه چرا؟ چون که شما میگی آقا این معلول نخص نیست اون علت بود چرا؟ به تعبیر دیگه با عدم تحقق یکی از الال منعی برای تحقق و تأثیر دیگر الال وجود ندارد خب پس اینجا در ظاهر اون قبلی گفتیم و حسن تضاهم بیمعناست خب اینجا بی بیمعنا میشه یا نه؟ تضاهم از این جهت در واقع تضاهم بین هدف پایینتر با هدف بالاتر از این جهت مانعی ندارد چون که اینجور نیست که اگه این نبود اونم نباشه اینا جدان علل دیگر هم وجود داره در واقع منعی برای تحقق سایر علل وجود نداره و در نتیجه میتوان انتظار در واقع تضاهم داشت تحقیق تضاهم بین مفهوم کلیه در واقع هدف پایین با بالاتر حالا هر کدام باشه یک و دو باشه دو و سه باشه اینجا تضاهم انتظار تحقق میره چرا که مانعی نداره اما واقعا یه مقداری شاید اینجا دور زدیم ما در واقع اینجا دو تاست لذا گفتیم در ظاهر به صورت بدوی اگر تضاهم خلاصه اینجا ا واقعی بخوایم بگیریم هر علتی با معلول خودش در واقع چند هدف بود در این مورد در واقع یکیش واقعا مقدمه نبود در این باره می توان گفت واقعا تظاهم خلاص اونجایی که می توان گفت در موردی که مقدمه یکی مقدمه برای دیگری باشد تزاعهمین نیست و در موردی هم که خلاصه امکان تحقق مقدمه و هدف پایینتر باشد مصداق در واقع مصداق رخ نداده. ی به صورت یه تعبیر دیگه بگیم در واقع هر دو فعل منتفی است همون قایتی که حاصل زینه هدف پایین که محقق نشود اون مصداق که در واقع امکان تحقق یک مصداق خاص از مقدمه و هدف تر خلاصه امکان داشته باشه خلاص اونجا امکان بباشید نداشته باشه اون نتیجه در واقع معلول اون هم رخ نخواهد داد و تحقق پیدا در واقع تحقق پیدا نخواهد کرد به چه معنا یعنی اون معلول حاصل از خود اون حاصل از آن مصداق دیگه نبود. پس هر دو یا هر دو با هم, هم یا هر دو طفعاً. پس اینجا دیگه تظاحم نیست، در نتیجه نمی توان مفهوم تضوم رو کار برد. درست اون یکی مقدم بود. پس ما در واقع چه بسا بتوانیم بگیم باید بریم ببینیم تزاهم بین همون جناب استاد یوسفی تزاهم پایین با بالا رو مطرح کرد یکی هم تزاهم دو تا بغل دست هم مثلا دو هدف میانی اونجا میشه بگیم خب تزاهم دو علت هم امکان دارد. قمنتها خب این اینها این هم به صورت بدوی بود تزاهم دو علت هم در واقع دو هدف هم هدف هم میانی یا مقدماتی امکان داره. خب اشکال نداره. اگر توانستیم رفع تزاهم بکنیم خب خدا را شکر اما اگر امکان نداشت اینجا چه مانعی ما داریم اینا با هم تزاهم دارن خب اشکال نداره اینا تزاهم دارن هر دور رو نمیتوانیم وقت انجام بدیم و هدف‌های مزبورم قرار بود به صورت هم عرض انجام بگیرن تامین ادالت تامین رفاه تامین امن خ خب اینها امکان دارد چرا هر چند که خلاصه می توانند تاثیر خاص خود رو در تحقق هدف نهایی داشته باشند؟ این یه بحث دیگه بود؟ اینها حال یه بحث دیگه هم هست؟؟ اینها افعال مختلفند. ان اولا این اه اهداف رو گفتیم از سنخ فعلند اگر واقعا از سنخ فعلند فعل بودن این ها یعنی چی؟ یعنی افعال مستقلند. هر یک از اونها افعال مستقلی هستند که می توانند در واقع مختزی وجود قدرت برای انتصال و انجام هستند برای خلاصه قدرت برای تحقق بخشی به خود هستند این یه مسئله مستقله در و در نتیجه گاهی در واقع تحقق یکی پرداختن به یکی از اونها پرداختن و اقدام به انجام یکی از اونها مستلزم عدم قدرت برای امتصال و تحقق خلاصه اون تکلیف اون کار برای تحقق اون هدف به عنوان فعل مستقل خواهد بود خب اینجا جای ترهش هست تضاهم در میان و امکان داره اما اونجایی که طولی بود دیگه خلاصه اون مقدمه بودن به چه معناست بله اگر مقدمه بودن از سنخ مقدمات اعتباری باشه خب امکان تضاهم وجود داره در نتیجه در نتیجه اگر در خلاصه در درون یک نظام ما در واقع اهدافی رو به صورت اعتباری مقدمه برای هدف بالاتر تلقی کنیم اینجا امکان تزاهم بین آن هدف و هدف بالاتر وجود دارد البته همونطور که میتوانه خلاصه در پایینی هم عملا هست دیگه خب ای ما این رو یه تفکیکی باید بکنیم بنابراین اونجایی که خلاصه تفکیک ما دو مورد رو تفکیک کردیم ابتدا در واقع از میان در واقع رابطه مقدماتی اعتباری این یه وقوله بود اینجا مشکلی ما نداریم در درون یک نظام یک نظام اهدافی رو ما اینطور در نظر بگیریم چنان که می توانیم می توانیم میان اهداف در یک نظام با اهداف همرتبه با اهداف همرتبه با آن در نظام دیگر یا با اهداف غیر همرتبه با آن در آن نظام خلاصه شاهد تحقق تظاحم باشیم چون که الیتی که نداشتند دو مورد خلاصه ما داریم، یکی در یک نظام، دومی هم چی در یه نظام دیگه بین دو نظام حالا ولو اینکه که بحث مستقلی خودش یه بحث دیگه ولی منطق کار اینجا مشخصه اگر فرماشی دارن دوستان بفرمند در این قسمت پس ما عرض اون که اهداف اگر اعتباری تلقی بشه یک ملگوه امکان تضام وجود داره اگر پس رابطه اعتباری بود الی و معلولی واقعی نبود اگر رابطه اللی باشه اینجا خودش دو قسمه اللیه رابطه اللی واقعی ببخشید انحصاری غیر انحصاری اونجایی که انحصاری باشه خودش باز اونجا مانع داره چون که پیشفرزش متفاوت اما اگر رابطه اللی خلاصه متفاوتی باشه انحصاری نباشه اونجا با زمینه تزاهم وجود نداره با بالایی منطور به چه علت؟ در واقع چون که به صورت بدوی میشه تو چون رابطه علی و معلولی حاکمه اینجا مشکل اصلی در این رخ میده در واقع حاکمیت ماهیت رابطه علی و معلولی مستلزمه تحقق یا عدم تحقق علت و معلول معلول وجودی به صورت توامان است از این رو اصلا در واقع جای طرح مقوله تضاحم در میان اونها نیست یکی معلول دیگه‌ای دیگری دو تا فعل جدا نیستند این نتیجه اونه خب این یه بحث دیگه میشه دست ما نیست خب اینجا نگاه کنید الان تأمین رفاه حالا تو بحث اقتصادی بگیم یه موقع میگیم تحقق رفاه در واقع مرموله رو خیلی روشن میکنه اگر ما گفتیم تأمین رفاه تامین رفاه بود اگه با یه حرکت انجام میشه همین که ما اون علت رو در واقع انجام دادیم اون معلول رخ میده در واقع تحقق اون معلول در گیروی تحقق علت تحقق هدف غایی در تصویر الی معلولی واقعی علی معلولی وجود شناسانه اینجا در واقع با یک کار دو تا کار نداریم در واقع, در واقع از طریق در این قال تحقق پیدا می به این صورته که با تحقق علت استن در واقع میتوان تحقق معلول رو انتزاع کرد نه لذا در بحث در بحث در واقع نسبت در بحث از نسبت اهداف موجود در یک نظام اگر در واقع اون معلول نهایی، علت غایی به مسابه معلول اهداف پایین تصویر بشه فعل جدا و مستقلی نخواهد بود که در واقع جای تره تزاهم باشد چرا؟ چونکه خلاصه اگر ما یک کاری رو انجام دادیم اون خود به خود تحقق پیدا کرده دو فعل نداریم تا به بین اونها در واقع دو فعل مستقل نداریم تا به بین اونها تزاهمی تصویر کرد خب بعد اول خود دوگانگی باشه دوگانگی اینی نه اینا با یک کار با یک قدم شما دوتا کار کردید علت رو محقق کردید و بنابراین معلول هم محقق شده اگر فرماشی از دوستان اینجا بفرمایند پس با تحقق اگر واقعاً علته خب اگر میخواد بگید پس ببینید الان تعبیر جناب استاد چی فرمودن چی تحقق اهداف رتبه دوم مقدمه تحقق برای هدف رتبه اول است خب مقدمه چی مقدمه وجودیه پس علت معلوله اگه علت معلوله دو تا فعل نیست که بگیم تضامه خودشون هم غیر متصوره ولی بعد اینجا رو بیشتر بعد فرمودن هر یک از این موارد سگانه که ادالت اقتصادی و امنیت و رشد و اینا حاصل بشه اون رفاه حاصل خواهد شد پس این شد انتظام در صورتی که آیا ما هدف نهاییمون اینو بعد کامل تصویر کنیم پس یک ابهامی هست که ما در اون تصویر هدف یه ابهام کلی داریم در خدمت سیم. دوستان اگر فرماشی دارن بفرمایید دوستان سوالی اصلا دارید ندارید بفرمایید یکی از دوستان آقای نجف آبادی دستشون دست و بالا فرمودن با صوت اگر بفرمایید این من چون خارج شدم دور برگشتم اون پیام های قبلی رو دیگه نمیبینم متاسفانه موقع اگر اگر دارید به بفرمایید اگر اونایی که پاسخ ندادم ممنون میشین فقط دست میره بالا مونتا کارش کنیم فرمودن فرمایشی ندارن مقدمه قریب و برید داریم خب بله حتی قبول و رد فهمودن آقای نجامهت اولوه بندی به این برای چانین رفع تزاهومیست خب ما باید آقای لنگری فهمدن ما باید برای خودمون دنجام مفاهیم رو تعریف کنیم که اون بحث قبلی بود فرمایش های قبلی آقای شاکری خب آها پس فرمایش های شاکری رو داشتیم یه تیکه بخشید اگر اجازه لحظه ای فرمایش آقای شاکری رو که بحث علت و معلول بود رو پوشش دادیم که گفتیم اگر علل موجده باشه علل انحصاره باشه اینا تاثیرش چیه؟ بله ایه. بعد فرمودن اگر تزامه در همین دست علل هست در هدف بله همین عملا فرمایششان رو ما تایید کردیم بفرمایید داخت مثلا چون که استرالیا، از استراسون، عنوان کنترل پروژه دار برون. من که اون الگوریتم که حاکمه رو همین بحث اولویت بندی هاست. مثلا میاد هر کاری رو به کارهای کوچکتر تقسیم میکنه و برای هر اونها اونها منفعت و اه ای که تعریف میکنه واسه این موضوع حاضری ها اونها رو اولویت ماندی رو برای انجام نداد. و قطعاً تلویحات میده حاضری میشه مثلا میده در خیلی از آپارتمان رو با هم نمیشه ولی بر اساس اون بحث اساس و منفعتی که تعریف میکنیم اولویت بندی رو انجام اینجا منظورم همین بوده حالا چه وقتی شما اولویت ها و می توانید به اساس حزینه حض... و منفعتی که تعریف میشه براش برایش اونهای غلابیت بندی کنید و به تحکیب انجام بدید خب این فرمایش الان کلیه الان ببینید ما نتیجه فرمایش شما تو این بحث ما چیه می کن بحث ما الان پاسخ خاص و تحلیل فقط این فرمایش آیه جناساد یوسفیه ما می نتیجه این چی میشه؟ الان نتیجه فرماه شما چیه؟ تایید اون الگوی جانب استاد یوسفیه یا تایید عرضه بنده عرضه این بود که اصلا نیایید بگید که آقا بین اینها، بین این هدف پایینتر و بالاتر تزاهمه اول ریشه و رو معلوم کنید ببینیم شما که میگید مقدمه از این مقدمه تحقق که میگید مقدمه اعتباریه یا مقدمه واقعی وجودچناسانه است اگر مقدمه است خب دیگه میشه معلول دیگه نباید بین ال... اصلا جا نداره بگیم بین علت و معلول تضاهمه به دیشه اینکه وقتی که علت آمد معلول با خودش می آسل فقط شما انتظارش می کنید علیت و معلولیت با همه پس اصلا جای تضاهم نیست اگر شما میخواید بعد وقت ببینیشان نشان کوتا یه رفت و بر... تذبذب اینجوری اگر تضامن بین رفاه عمومی یا یکی از این سه هدف پیشاورد به یقین رفاه عمومی مقدم است میگیم چرا اصلا اینجا جامی داره بعد دوبار خودشون کوتا آمدن فهمیدن اگر تر تق... گرچه این غیر متصور میگیم همین غیر متصور بودن درسته چرا ایشان مو تا تو تعلیلش گفتن هر کدام که باشه باعث افزش رفاه عملا یعنی نتوانستن به اون ملتزم بشن این حرف دومشون درسته خب فرمایش شما الان تایید عرض بنده است یا اه... یه جمله یک یک تضاهم واقعی وجود ندارد یک تضاهم ستوری وجود دارد هم. حتی تضاهم دارد میشه به این به خاطر همون اولویت بندی هاست که به راهم تضاهم به وجود میاد ونی در واقع اولویت بندی یک نیست یعنی موارستی مقدم داشتن بعضی از افعال بردیگرم ورستن به حضر رو داشته نظر داشته کن تضاهم واقعی نیست ببینید الان عرض من ج... یه تکشم جمعش چی شد؟ اون فرماش آقای شاکری هم به بابند، هم هم‌نواست یا بنده با ایشان هم, هم یا هر طور بفرمایید. اون چیه؟ اینکه ما میخواستیم اینجا الان جناب اسد یوسفی دو تا تضاهم مطرح کردند. یکی تضاهم علت پایینی با مقدمه پایینی و هدف پایینی با, پایین با هدف بالایی. ما با این رو ریشه‌ش زدیم. گفتم آقا این تضاهمه درست نیست. از اینجای جای بندی هم نیست چون که اینا رابطه علّی محلولی دارن. خود شما هم میگید مقدمه است پس اینه نگید میونه تزام دوم تزام دوم بین علل بین اهداف هم رتبه است که این رو نصف نکردیم به برداشت من از فرمایشوی حضرت علی اینه که تو این قدم دارید تو این مسیر دارید سیر میکنید این که میگید یعنی قال یعنی پس ببینید ما دو تا تضاهم یک دقیقه و خورده بیشتر وقت داریم الان قطع میشه یکی این که آیا بین پایینی و بالایی تضاهمه؟ میگیم نه همین که اشان میفرمان غیر متصوره درسته پس اصلا یه جمله نباید بگن اگر تضاهمی پیشاییت فلانی مقدر است اینو بزید کنار بگید اصلا غیر متصوره اون جمله دومو بگید میمانه تضاهم همعرض عرض کردیم که چرا؟ این اهداف همعرض میتوانن هم تضاهم پیدا کنن چرا؟ که مقوله هاشان متفاوته از این یکی عدالت اون یکی امنیت علاوه اینکه اضافه کنیم جنسشون هم ممکن متفاوت باشه اون چیه یکیش مثلا تاثیر سلبی داره مثلا امنیت در واقع می یعنی امنیت در بین هم‌عز بین اهداف هم‌عز جا داره چرا؟ چون اینا افعال متفاوتن افعال همعرض هستند. بعضیش هم ممکنه از سنخ عدم فعل باشه الان دیگه قطع میشه از دوستان خدافزی میکنیم نا. نا. نا. نا. بله. باز نقطه سمجی دوستان حالا اون مقاله رو من نشد وسط جلسه مقاله که آقای مهری فرمودن قاعدتاً الان یه لحظه دوستان اگر بود اون رو هم ملازه بفرمایند ملتوست دعا خدا نگهده الحمد لله رب العالم